آره من از آغاز می‌دانستم چه خبر است وقتی خداوند خدا آشکار کرد که بر آنم تا برای خیش جانشینی در زمین بسازم بر گونه خیش پشتم لرزید از ترس و ادب حرفی نزدم اما خدا خدا می‌کردم که فرشتگان که رویشان با خدا بازتر است چیزی بگویند همه می‌دانستیم چه خواهد شد ناگهان ولولهی در صحرای ادم برخواست پرشتگان کوچک و بزرگ دور و نزدیک هراسان و بیقرار از همه سو شتابان به سوی بارگاه عرش کبریایی به پرواز درآمدند. آمدند لحظه بعد که از گذر خیالی در رؤیا سریع تر گذشت همگی در برابر تخت پرشکوه نور ایستادند و فریاد برآوردند. براوردند باز میخواهیم موجودی در زمین بیافرینی که دنیا را به گند زند و به خون کشد؟ و خداوند خدا با تنین استوار و بیتردیدی فرمود: من میدانم رازی را که شما نمیدانید. و ناچار در انتظار فاجعه همه خاموش خاموشماند. اما هیچ کدام معنی خاصی را که در پاسخ خداوند خدا نهفته بود فهم نکردند و اکنون نیز مفسران خداوند خدا پیش پیشبینی حراسامیز و سیاه فرشتگان را در کار آفرینش بنی لجن و عاقبت شوم این را تکذیب نفرمود گفت رازی را که در این کار است فلسفه ای را که در خلق این موجود صفاک پنهان است نمیدانی وگرنه همه قرائن بعدی در همان آغاز کار نشان داد که پیشبینی فرشتگان درست بود و خداوند خدا نیز پنهان نکرد که با آنان در باب این لجنزادگان حریص ستمکاری کافرکیش هم رأی است و هم آواز. پایان نخستین شب بود پیش از آن نه شبی بود و نه روزی نخستین شب داشت پایان می عالم زر در انتظار طوفان الاست سکوت کرده بود ناگهان فرشتگان به پرواز آمدند سراسر عالم وجود را و افق در افق صحرای عدم را در نوردیدند وجود و عدم یکی بود تنها عدم بود که وجود داشت. سایه شتابان و سبکخیز بالهای فرشتگان همچون ارواح پاکی که هنوز هیچ کالبدی ندیدند و به هیچ جسمی خود را نیالودند از همه سو گریخت. صدای فرشتگان همچون آوای محزون و دلانگیز معبدی غمگین که راه به تنهایش را میخاند در فضای هستی تنین میافکند. فرشتگان مأمور بودند تا پیام حضرت خداوندی را از بارگاه ماورایش به همه ذرات عالم عدم برسانند. خداوند خدا ذرات را فرا می‌خواند. ناگهان همه ذرات به هیجان آمدند، خروش برداشتند. هنوز شب بود، پایان نخستین شب ذرات پراکنده به صدای دعوت فرشتگان به هم برآمدند و گرد هم آمدند و در یک چشم به هم زدن صف اندر صف زانو به زانوی هم پشت در پشت یکدیگر نشستند مجلسی بود چه چشمی را یارای دیدن آن است چه خیالی را قدرت تصور آن است شکوه و عظمتی که در عدم نیز به سختی می گنجید. همه جمع بودند همه همه چیزها و کسها همه آنها که آمدند و مردند همه آنها که هستند و همه آنها که خواهند آمد سالهای آینده قرنهای آینده میلیاردها سال و قرن آینده سکوت بود و سکوت تپیدن بود و تپیدن انتظار بود و انتظار شب بود پایان نخستین شب که ناگهان رو بر لبان افق لبخندی شکفت نور چشمه از نور سر باز کرد تیغه های نرم و زرین آفتاب نخستین به آسمان سر برکشید ذرات همه برجا خشک شده بودند و سراپا چشم و پا تا سرگوش که ناگهان صدای زلزله مانندی که عدم را برعاشف کند از جایگاه نور برخاست من پروردگار شما خداوندگار شما نیستم ذرات یک صدا چرا چرا این چرا از عمق نهاد هر ذره ای برخاست و صدا خاموش شد سکوت. من از هیجان سر در پیش نهاده بودم و آرام میگریستم ذرهای خرد در پهلوی چپم همچون سپند بر آتش بیتابی میکرد گروهی از فرشتگان بر دیوارهای افق بالا رفتند و تختی از نور نوری که به هیچ رنگی شبیه نبود گاه بنفش مینمود و گاه سبز و گاه سپید بر بالای طلوع نهادند و ناگهان خداوند خدا با جلال و جبروتی که عدم را می و زیبایی که در دل زری عشق می آفرید بر آن تکیزد ناگهان لوح سبز در دست چپ خداوند خدا ظاهر شد و بیدرنگ قلم زرین در دست راستش با نگاه های شگفتش که همچون نهری از نور در جان زرات جاری می شد به این صفهای خاموش و منتظری که تا بین نهایت دامن میکشید نگریست. سکوت و انتظار چنان سنگین و آرام بود که گویی بر سر هر ذره ای نشسته است. خداوند خدا به نوشتن آغاز کرد. در هر ذره ای می مینگریست و سپس بر لوح سبز چیزی مینوشت. نوبت من شد. چقدر آرزو کردم که نباشم، بگریزم اما نمیشد دست قضا مرا به دینجا بود. زنجیر قدر مرا به این نقطه بسته بود. ناگهان تمام هستیم گرم و روشن شد. دیدم که خداوند خدا در من می نگاهش را از من برگرفت و بر صفحه لوح افکند. قلم را بر آن نهاد. شهرش آرام بود و حالتی داشت که در نوشتنهای دیگر داشت دلم می و ماندن را برایم دشوار کرده بود لهاگهان قلم را نگاه داشت موجی بر سیمای روشنش دوید سربرداشت و باز در من نگریست ای، لحظاتی بر من قرنی گذشت نگاهش از شهره من به سمت چبلغ زید. بر روی ذره کوچکی که از آغاز در کنار من آرام نداشت دوباره نگاهش را از او برگرفت و در من دوخت اندک اندک احساس میکردم که ما هر دو را به یک نگاه مینگرد عالم از شکفتی سکوت کرده بود و ماجرا را مینگریست ناگهان لبخند خفیفی همچون چگونه بگویم بر لبهای خداوند نشست نگاهش را در عمق ذاتم گرمتر و روشنتر یافتم چشمهایش همچون دو خورشید نیرومند و مهربان که ناگهان در دل سرد و سیاه شبی بکشایند در ذات من گشود دو آبشار نور در فطرتم فرو ریخت چهرش چهره پدر مهربانی بود که بر شیطنت فرزند سرکش اما دوست پوشیده میخندد و پنهانی کیف میکند. با همین سیما و لبخند چشمش را بر لوح سبز دوخت و به نوشتن آغاز کرد. لبخندش هر لحظه سیرابتر و اسرارآمیزتر میشد. قلم زرین به گونه بدیعی بر لوح میگشت. اندیشههای رنگین و خاطرههای شگفت آینده که در درون خداوند میگذشت بر پیشانی روشن و پر از قدس بی پرتوی مرموز و بیقرار رفکنده بود اما من هیچ نمیدانستم هیچ نمیشناختم تنها یک احساس بودم اینکه هیچ چیز را احساس نمیکنم اینکه عآینهای هستم که هیچ تصویری بر آن نیفتاده است دانستن اینکه هیچ چیز نمیدانم، همین. آنگاه خداوند خدا با قلم زرینش نامها را همه به من تعلیم کرد. احساس کردم که گنجینه همه اسرار کائنات شدم. آنگاه خداوند خدا سکوت کرد. ذرات همه سرکشیدند. وجود و عدم هر کنار هم ایستاده منتظرند ناگاه خداوند خدا دستهای بزرگ و زیبایش را دستهایی را که معجزه خلقت و حیات از آن دو اند در سینه فضا پیش آورد دو کف دست را کنار هم گرفت در یک لحظه مرموزی که ندانستم چگونه گذشت کوهی از آتش، آتشی دیوانه و گدازان و بیقرار در کف دستهای وی پدید آمد. سرش در سینه آسمان از چشم ها رنگش همچون قلب خورشید بود. زیبایی انگیزی داشت. عظمت وحشیانهی شکوه نور را داشت اما همچون سائق فرار و بیتاب می‌نمود. آتشفشان آتش فشان مهیبی بود که از دردی مرموز یا لذتی طاقت فرسا بر خود پیچید شکلش مشخص نبود اما می دیدم که مدام در دگرگون شدن است لرزه بر اندام ادم افکنده بود وحشت همه کائنات را ساکت کرده بود ناگهان ندای خداوند خدا هستی را در سکوت ادم فرو بود ندا آن را بر کوه‌ها و صحراها و دریاها ارزه می کرد. هیچ یک را از وحشت یارای پاسخی نبود. قامت بلند قله همچون فانوس به روی خود تا خورد. دشتهای پهناور دامن فراچیدند. دریاها پا به فرار نهادند. همه از برداشتنش سر باز زدند. من برداشتم. ما برداشتیم. خداوند خدا در شگفت شد پیش رفتم و در برابر چشمان وحشت زده ملکوت آن کوه قذبناک آتش را از دست خداوند گرفتم و خداوند خدا در حالی که بر چهرش گل سرخ شادی می شکفت و شهد محبتی از لبخند زیبای لبانش میریخت گفت آه که چه سخت ستم کار نادانی و چشم و دل من از این اتاب همچون پرشکوه ترین ستایشی که از ازل بر زبان خداوند خدا رفته است، از شکر و عشق لبریز شد. خشم و ناخوشنودی از چهره فرشتگان آشکارا بود. خداوند خدا آنان را از نام ها پرسید. هیچ یک ندانستند. گفتند ما را جز آنچه تو تعلیم کرده ای دانشی نیست. و از من پرسید یکا یک همه را پاسخ گفتم خداوند خدا با چهره شکفته از توفیق آنان را خطاب کرد که دیدید من می دانم آنچرا شما نمیدانید. ناچار با تلخی خاموش شدند سپس خداوند خدا آنان را فرمود همگی بزرگتان و کوچکتان دورتان و نزدیکتان در پای اینان به خاک کفتید فرمان فرمان خداوند بود همه سر به سجده نهادند جز شیطان که تغیان کرد اکنون که خداوند خدا دوست داشتن را برمیگزیند عشق را در پای آن به سجده میخواند. او که عاشق بزرگ و دیرین خداوند است از کین جانش آسی می شود. حسد عشق عشق را نیز تباه می کند مطرود عشق می گردد و دشمن دوست داشتن. اما به پاس عشق دستش را در انتقام گرفتن از دوست خیش امات دار آشنا و خویشاوند همانند و تلمیز درسهای اپانیشادی خیش باز میگذارد تا هم عشق را پاداش داده باشد و هم دوست داشتن را بیازماید چه میگویم به گدازد صافی کند و بسازد در ستیز با اوست که دل میپرورد در زندان مهیب اوست که آزادی را میشناسیم شیطان نیاز به خداوند را در جان ما میآفریند و قوت میدهد مائده‌هایی که بیرنج بر سر سفره گسترده در زیر دستمان مییابیم همه دست پخت شیطان است مگویید شیرین است، مگویید رنگین است. این طباخ حسد و کینجو شیرین میپزد و رنگین میسازد تا بر سر صفره ما نگاه دارد تا از سفر بازمانیم. او از یک گام برداشتن ما بیمناک است. گله رسوبی. این سهم اوست در سرشتن ما. روح خداابد خدا در جانم. امانت او بر پشتم، قلمش در دستم و حکمت نامها، دانش ودا بر لوه دلم، کائنات در برابرم به رکو، ملائک در پیش پایم به سجود، و من در ملکوت خداوند آزاد و بر کناره دریای اسکیز. سایه فرح اهورایی بر بالای سرم افراشته و بالهای نرم جبریل، در زیر پایم به مهر گسترده اما چه است لذتها را تنها بردن و چه زشت است زیباییها را تنها دیدن و چه بدبختی آزاردهنده است تنها خوشبخت بودن در بهشت تنها بودن سختتر از کویر است در بهار هر نسیمی که خود را بر چهرت میزند یاد تنهایی را در سرت بیدار می کند. هر گل سرخی بر دلت داغ آتشی است. در آن روزها که آفتاب و باران به هم در می در آن شبهای کبیر که از آسمان ستاره می بارد و دشت دعوتی را با دلتو تکرار می کند، در سینه دشتی افق خونین را مینگری و مسافری تنها از پنجره کوپه قطارش سال نو را در گریبان سپیده تحویل می‌کند بیشتر از همه وقت دشوارتر از همه جا احساس می‌کنیم که در این مصنبی بزرگ طبیعت مصرعی نا تمامیم من انتظار یک بیت شدن است در آن حال که لذتی را با دیگری می بریم، زیبایی را با دیگری می بینیم. احساس اینکه که آنچه را در این لحظه در خیشتن خیش می آن آنگونه که همکنون هستیم، همان است که او میابد و همان همانگونه است که او هست، بیگانگی را تسکین می یکه یک که بودن را جبران می کند. رنج نیم ماندن را التیام میبخشد. تیشاوندی، آشنایی و همانندی با شرکت دروح در یک احساس حس می کند اگر هر دو یک جا و یک وقت تجربه کنند با هم و به خصوص بی دیگری، تفاهم نتفاهم در مفهوم که تفاهم در فهمیدن این است که تنها خوشبخت بودن خوشبختی رنج زاست، نیمه تمام است که تنها بودن بودنی به نیمه است و من برای نخستین بار و برای آخرین بار در هستیم رنج تنهایی را احساس کردم بی کسی بهشت را در چشمم کویر می‌نمود. جز این هنگام تنهایی پناهگاه معنوس من در گریختن از تنها شد جزیره آرام و راستین من در این دریای سامسرای حول و نمود و ناپایداری و غرق بود. خلوت خوبم در ازدهام بد جمعیت آزادی نفسم در خفقان نفوس رنجم از آن پس دیگر تنهایی جدایی بود و بیتابیم نه هرگز بی کسی بی شد. در بهشت همه زیبایی ها، کام ها و رحایی ها بر لب نهرهای سرشار شیر و اصل، تنها دیدن و تنها آشامیدن و تنها نشستن، برزخی زیستن است. با دردها و زشتیها و ناکامیها، آسوده تر توان تنها ماند، بی همدرد، بی غمگسار، بی دوست. این خود یک نوع نواختن دوست است، یک مهربان بودن با اوست در دردها دوست را خبر نکردن خود یک عشق ورزیدن است تقییه درد زیباترین نمایش ایمان است به محبت خلوصی میبخشد که سخت شیرین است رنج تلخ است اما هنگامی که تنها میکشیم تا دوست را به یاری نخانیم برای او کاری میکنیم و این خود دل را شکیبا میکند طعم توفیق میچشاند اما در بهشت چگونه میتوان بی او بود سایه سرد و دلانگیز توبا قصر آرام و خیال پرور لکروا، بانگ آب نهر مقدس زمزمه مهربان جویبارها جوشش لایزال چشمه های آب حیات پیک های سب و خیز نسیم عطر دلنواز گل و نغمه بهشتی مرغان و آواز پر جبرئیل و سایش بالهای فرشتگان و آن همه زیبایی ها، آن همه نعمتها، آن همه پاکی و خوبی و شیرینی و شربت و شراب و مستی و آزادی و کام و خوشبختی چگونه میتوان دوست را خبر نکرد؟ چگونه میتوان قیبت او را و تنهایی خیش را کشید؟ چه بیهودگی آم و چه برزخ بی است بهشتی که در آن او نیست در بهشت همه آرزوها در کنار همه خواستنها در آنجا که هرچه می بایست هست تنهایی آزاری طاقت فرساست هنگامی که راه سفر در پیش پاهای مشتاقی باز می شود بی زخت است پروردگار مهربان من از دوزخ این بهشت رهاییم بخش در اینجا هر درختی مرا قامت دشنا است و هر زمزمهای بانگ عذایی و هر چشماندازی سکوت گنگ و بیحاصلی رنجزای گستردهای در حراس دم میزنم در بیقراری زندگی میکنم و بهشت تو برای من بیهودگی رنگینی است. این هوران زیبا و قلمان رعنا همچون ما های دیگر برای پاسخ نیازی در منند اما خود من بی پاسخ ماندم هیچ کس هیچ چیز در اینجا به خود هیچ نیست بودن من بی مخاطب مانده است من در این بهشت همچون تو در انبوه آفریده های رنگا رنگت تنهایم تو قلب بیگانه را می شناسی که خود در سرزمین وجود بیگانه بوده کسی را برایم بیافرین تا در او بیارامم دردم درد بی کسی بود